سپاسگزارم که با ما همراه هستید. فرشد ناصولی هستم. خبرهای دانمارک در هفته گذشت رو به سمع شما میرسونم. با ما همراه باشید. هواپیماهای دانمارکی در عملیات نظارت بر دریای مدیترانه و اقیانوس هند، کمیته سیاست خارجی دانمارک به دولت اجازه داد از هواپیماهای چالنجر در نظارت بر ترافیک کشتی در اقیانوس هند استفاده نماید. در همین حال دولت یک هواپیمای چالنجر نیز در اختیار استادیو اروپا قرار داد تا در برنامه کنترل مرزی استادیو اروپا بر فراز دریای مدیترانه به پرواز درآید. پاسمسن پیروزی مکرون در جهت تقویت اتحاد اروپایی. لارس لوکه پاسمسن نخست وزیر دانمارک گفت فرانسه با انتخابه امانو مکرون با عنوان رایج جمهور آینده خانه تقویت اتحادیه اروپا و همکاری اروپایی است و ما نمیتوانیم کسانی را به جهانی سازی و همکاری بین المللی پشت کردن را نادیده بگیریم باید نگرانی های آنها را درک کرده و نشان دهیم که اتحادیه اروپا قادر به حل مشکلات رو در روی آنهاست ما باید دست به دست هم دهیم تا با تروریسم مبارزه کنیم با چالش مهاجرت برخورد کرده و رشد و ایجاد اشتغال را تضمین نمایم خوشحالی طرفداران مکرون در آلمان هم دور از چشم نبود در پی اعلام پیروزی مکرون در انتخابات فرانسه طرفداران امانوئل مکرون با خوشحالی از پیروزی نماینده خود در نتیجه انتخابات در کپنهاگ جشن گرفتن. امانوئل مکرون ناکاندیدای میان رو در فرانسه با غلبه بر لوپن لوپن راستگرای افراتی رئیس جمهور فرانسه شد با 39 سال سن او جوانترین رئیس جمهور تاریخ این کشور بعد از انقلاب فرانسه میباشد آمریکا به دانمارک هشدار داد که اجازه ندهد خط لوله جنجالی روسی از آب‌های دانمارک عبور نماید خط لوله 1220 کیلومتری گاز روسیه را از طریق آبهای دانمارک به آلمان منتقل می‌کند اما آمریکا از دانمارک خواست تا این پروژه را متوقف نماید. وزیر دفاع آمریکا در کپنهاگ واشنگتن طرح ایجاد مناطق ام در سوریه را بررسی می‌کند. وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه در کپنهاگ اعلام کرد که واشنگتن طرح ایجاد مناطق امن و تنش‌زا در سوریه را به دقت مورد بررسی قرار می‌دهد. به گزارش ها از کوپنهاگ وی در عین حال گزاره هشدار داد که کاری ها و جزئیات مربوط به این طرح ممکن است باعث دردسر شود. وزیر پای آمریکا که برای گفتگو با متحدانه خود در پایتخت دانمارک به سر می‌برد، محتاطانه در مورد شانس موفقیت این طر سخنگو افزود همه نبردها در نهایت پایان می‌یابد و ما از دیرباز مشتاق بودیم که جنگ سوریه چطور تمام می‌شود از این رو پیشنهاد مطرح شده را مورد بررسی قرار می‌دهیم بسته شدن معابر عمومی کپنهاگ با موانع بوتونی به دنبال ورود اخیر یک دستگاه کامیون به یک مرکز خرید در شهر پای پایتخت سوئد، تعداد نیروهای پلیس دانمارک مستقر در حال گشت در سطح خیابان‌های کپنهاگ تخت دانمارک به طور بی‌سابقهی افزایش یافته و موانع بتونی در خیابان‌های مرکزی این شهر خود خودنمایی می‌کنند. در برخی مناطق کپنهاگ، موانع بتونی برای جلوگیری از عملیات مشابه مشابه حمله ماه گذشته در سکون پایتخت تخت مستقر شده است روزنامه بینون مللی نیویورک تایمز از اخراج پناهجوی جوی ساله زن افغان از دانمارک را در روزنامهاش منتشر کرد این زن هفتا ساله که خانم وزیری نام دارد و گفته می شود این پیر زن ساله از بیماری روانی هم رنج می برد از وی 25 سال پیش به در دانمارک مستقر شدن و هم اکنون اقامت این کشور را دارند با این دولت دانمارک حاضر به پذیرش تقاضای پناهندگی این زن 70 ساله نیست این روی افغان نزدیک به 5 سال پیش به دانمارک پناهنده شده به گفته رسانه های محلی خانواده این زن افغان اداری مهاجرت دانمارک را مورد انتقاد قرار دهند که با وجود آگاهی از شرایط افغانستان و خطراتی که میتواند برای مادر 70 ساله بیمارشان داشته باشد باز هم می‌خواهد او را به افغانستان بازگردن کردند. یک خبر زیبا از آوز یک هزار بادکنک در آسمان شهر آوز پرواز کردند. در یک مراسم خیریه سالانه پرواز هزار بادکنک بر فراز شهر آوز دومین شهر بزرگ دارماک جلوه و با به آسمان این شهر بخشید امسال با هدف کمک به بهبود و کودکان و نوجوان بی سرپرست برای قلبه بر چالش‌های پیش روی آنها هزار بادکنک برای جلب کمک مالی به مؤسسات خیریه و حمایت از کودکان بی‌سرپرست به پرواز درآمدند. کشورهای عضو اعتلاف ضد داعش در دانمارک گرد هم آمدند. اعضای اعتلاف ضد داعش در پایتخت دانمارک گردهام گرده هم آمدند، کشورهایی که هم‌اکتون با داعش در سوریه و عراق می جنگن برای تبادل نظر و هماهنگی های بیشتر در کوپنهاگ حاضر شدند. وزیر دفاع و وزیر دفاع آمریکا و همتای دانمارکی اصلی ترین برگزارکنندگان اینجا جلسه پانزده عضوی هستند که سهشنبه شنبه برگزار شد. طبق اعلام این اطلاف هدف بعدی نابودی کامل داعش عنوان شده است. و آخرین خبر از ارتش دانمارک ارتش دانمارک حدود پنجاه پناهجو را در دریا نجات داد نیروی دریایی ارتش دانمارک طی دو عملیات در سواحل لیبی حدود پنجاه پناهجو را از مرک نجات دادند نهادهای سازمان ملل روز دوشنبه نقل از افراد نجات یافته اعلام کردند که در تازهترین تراژدی در دریای مدیترانه بر اثر غرق شدن دو فروند قایق حداقل یازده مهاجر جان خود را از دست داده و پیش از 200 نفر دیگر نابدید شدند. نخستین قایق مهاجران اوایل روز جمعه سواحل لیبی را با دو مسافر ترک کرده ولی این قایق تنها چند ساعت بعد از آغاز این سفر غرق شده. یک فروند کشتی دارماکی حدود 50 نفر از نجات یافتگان را از از آب بیرون کشیده است. اجساد مربوط به 10 زن و زن و یک کودک از آب گرفته شده است. نمایندگان سازمان بین‌المللی مهاجرت و های عالی پناهندگی سازمان ملل در حال ارزیابی تعداد دقیق جان و ناپدید شدگان این حادثه هستند. روز یک شنبه نیز هفت مهاجر شامل یک زن و شش مرد توسط ماهیگیران لیبیایی و گارد ساحلی نجات پیدا کردند. سخنگوی سازمان بین‌المللی مهاجرت که با این افراد دیدار کرده گفت واقعه غرق شده حامل 120 مسافر بوده است که حدود سی نفر زن و نه کودک در آن بودند سیتون پایدار است